موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه لیسه لوقعتها لي وقعتها کذبه به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است هنگامی که قیامت واقع شود که در وقوع آن هیچ دروغی نیست گروهی را خار کند و گروهی را بالا برد هنگامی که زمین به سختی بلرزد و کوها در هم کوبیده شود و چون غباری پراکنده گردد در این هنگام شما سه گروه خواهید بود گروهی خوشبخت و چه گروه خوشبختی گروهی بدبخت و چه گروه بدبختی و گروهی که در خوبی و خدمت کردند از همه پیشی گرفتند آنها مغربانند در بهشتهای پر نعمت جای دارند گروه کسیری از مردم پیشین هستند و اندکی از متاخران بر تختهایی به هم پیوسته در حالی که برام تکیه زده و روبروی یکدیگرند. نوجوانانی جاودانی پیوسته دور آنها می گردند با قده ها و کوزه ها و از نرهای جاری بهشت شرابی که با نوشیدنش نه سردرد گیدند و نه بیهوش شدند و انباع میوههایی که خود انتخاب میکنند و گوشت لذیذ هر پرندهی که بخواهند و هوران زیبا چشم که مثل مرواری در صدفند این پاداش عمل کردشان هست. هیچ حرف بیهوده و گناهی در آنجا شنند به جز این که گفته می شود سلام، سلام وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وما اما گروه خوشبخت چه گروه خوشبختی؟ آنها زیر درختان صدر بیخارند و زیر سایه درخت پربرگ تهل به سر میبرند یک سایه مداوم در کنار آبشار و میوهای های فراوان نه شده است نه دست زدن به آن ممنوع است و همسرانی ارجمند آن همسران را ما آفرینشی نوین بخشیده ایم و آنها را دوشیزه گرداندیم. همسرانی با محبت و وفادار که هم و سالند، اینها همه برای گروه خوشبخت است. که جمعی از مردم پیشین هستند و جمعی از متأخران. و گروه بدبخت چه گروه بدبختی؟ در بادهای کشنده و آب سوزانند در سایه از دود غلیز قرار دارند سایه ای که نه خونک است و نه مفید زیرا آنها قبل از این در ناز و نعمت دنیا بودند و بر ارتکاب گناهان بزرگ اسرار می و می‌گفتند. آیا هنگامی که مردیم و مشتی خاک و استخوان شدیم دوباره زنده برانگیخته میشویم یا نیاکان ما اینچونین می شوند؟ بگو همه از اولین گرفته تا آخرین همه در میعادگاه روز معین جمع خواهند شد سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده ی حقایر. از درخت زقوم خواهید خورد و شکمهای خود را از آن پر خواهید کرد و روی آن آب سوزان خواهید نوشید مثل شطر تشنه خواهید نوشید این پذیرایی از آنها در روز قیامت است ما شما را خلق کردیم چرا تصدیق نمی کنید؟ آیا از منی که در رحم میریزید آگاهید؟ آیا شما آن را آفریده اید یا ما آفریده ما بر شما مرگ را مقدر کرده ایم و هرگز از آن عاجز نیستیم که به جای شما مردمی دیگر را بیاوریم و شما را در جایی آفرینش بخشیم که از آن خبر ندارید شما از آفرینش نخستین آگاهید پس چرا پند نمیگیرید؟ آیا چیزی را که کشت می کنید شما آن را رویاندید یا ما رویاندید؟ اگر بخواهیم آن را به خار و خاشاک تبدیل می تا در شگفت بمانید گویند ما ورشکستگانیم بلکه از همه چیز محرومیم آیا آبی را که می نوشید آیا شما آن را از عبر نازل کردید یا ما نازل کردیم؟ اگر می‌خواستیم می‌توانستیم آن را تلخ گردانیم پس چرا شوق نیستی؟ آیا آتشی را که میافروزید نمیبینید؟ آیا درختش را شما پدید آورده اید یا ما پدید آورده ما آن را هم مایه یادآوری و هم متاعی برای مسافران قرار داده اید. پس به نام پروردگار بزرگت تصویح گوید. سوگند به موقعیت ستارگان که اگر بفهمید این سوگندی بزرگ است. حقیقتاً این قرآنی کریم است. در کتابی محفوظ جای دارد جز پاکان به آن تماس نگیرند نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است آیا این کلام را کوچک میپندارید و به جای شکر روزی که به شما داده شده آن را تکذیب می کنید؟ پس چرا زمانی که جان به گلو می رسد حال شما فقط نظاره می کنید. ما از شما به او نزدیکتریم، ولی چشم بسیرت ندارید اگر جزای قیامت را انکار می کنید اگر راست می بازش گردانید بدانید اگر انسان از مقربان باشد برای او آرامش و برکت و بهشت پر نعمت است اما اگر از گروه خوشبخت بود پس تو را از سوی گروه خوشبخت سلام است و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه بود مایه پذیرایی آب سوزان است و سرنوشتش ورود به جهنم این همان حق و یقین است پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گود این ها دانه هو فَسَفِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ العلي الْعَظِيمِ خداوند بلند مرتبه